يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل انك حميد مجيد خب بسم الله الرحمن الرحيم یک تیراد از دوستو از من درخواست کردن که امون خاطراتی که در سفر داشتیم بر ما بو اینچی برداشت های داشتیم خصوصا کسی که یک کشور از یک جایی که مسلمان هستند و ایک جایی میرین که اونجا مسلمان ها بر اقلیت قرار دارند بسم الله الرحمن الرحیم برادرهای محترم سفر 15 روزه که من به کشور اندوستان داشتم از آغاز سفر بعضی چیزهای را دیدیم تا ختم سفر و دانستان از این من فکر میکنم برکل اگه جالب خواد باشم اولی است که یک مسلمان وقتی که سفر میکنه نباید فراموش کنه که مسلمان است و ما متاسفانه بازی از مسلمان های داریم که وقت سفر میکنن فراموش میکنن که ما مسلمان هستیم وقتی که من مسلمان هستم لازم میاست که پیش از حرکت کردن یا چند روز پیش از سفر انسان آمادگی امیر قسم آمادگی که بر سفر خود میگیره آمادگی با سفر اسلامی بگیره برای یک مسلمان اگر خاصه باشد جای نماز های یافت میشه که اتا قبلن ما هم دارن سال گذشته پیش قیام دین خان با اکتا جای نماز دیدم که قبلن ما هم داشت و بسیار خودترک بود یعنی میتونه یک مسلمان قبل سفر به امرای خود یک جای نماز بگیره و جای نمازش قبلن ما داشته باشه و در بازار یافت میشه شاید به قیمت بسیار کم یاف شود و هر جایی که بره با بسیار سادگی میتونه نماز خدا بخانه دومی وقتی که انسان به داخل تیاره سوار میشه شما ببینید یک مردمای مردم هستن که اونا را ویژیتیریان میگن که اونا ویژیتیبلز یعنی سبزیجات استعمال میکنن گوشت نمیخورن خب اونا کدام عقیده دارن که ما گوشت حیوانات را نمیخوریم میشه بازر وقت درباره از انسان کدام وقت دیگه تبصر را داشته باشه ولی یک مسلمان باید از خدا بترسه از گوشت هایی که در تیاره ها هست انتقالش چناب بکنه چرا که بسیاری گوشت ها دوسط غیر مسلمان ها زب همیشه و خوردن ازی بر مسلمان درست نمی باشه تا وقتی که انسان درست تحقیق نکنه و یا تیاره مسلمان ها نباشه و بگویند که ما, ما خود مسلمان ها زبه کردیم در غیر زید تیاره دیگه که اندیا ایرلینس هست یا کشورهای دیگه کامیار و دیگراک است، خوردن گوش روی تیاره ها بسیار خطرناک است برادرهای محترم بعضی از مشروبات توضیح می شده تیاره ها غالبا بعضی از مشروباتی هستند که گفته می و ما بعضی دوست بودند که استدلال میکردند که فیصدی الکولیزی کم است و در حدیث شریف است که چیزی که زیادش حرام است کمش هم حرام است بناهن برای یک مسلمان خوردن یک قطره شراب هم حرام است مثلا یک مشروع که انسان می نوشه کوشش بکنن که فیصدی از رو ببینه و اگر یک فیصد هم مشروب باشه نشاید نشا اونم یک فیصد انسان رو نشه نکنه درست است زیادش نشان میکنه اما به اساس حدیث دیگه پیغمبر سلام او چیزی که زیادش نشه آور است زیادش حرام است بناهن خوردن کم از او هم حرام است از که بعضی کسا میان یعنی که ای آب مچم جعو است و ای مچم فلانی اصابه دارن و فیصدیش کم هست و دو فیصد داره و سی فیصد داره خب ما همیشه این گپاره وقتی که بحث کردیم و گفتیم گفتیم که ما برای مسلمان های مخلص میگیم کسی که میخواد بفهمه، اما کسی که میخواد که چال بازی بکنه و فلیپکاری بکنه صحبتهای ما متوجه از اونم نیست برای از میگیم که مخترمانه شما از گپای ما خلاص هستیم که شما ما سر کار نداریم ما با برای خانم ها آقایان دوستان و مسلمانایی که می که دینه بفاهمند ما بشر می فاهمانیم اما دیگه را مشکل دیگه که ایجاد میشه شه احیانا نماز خواندن در تیاره باید ما از علمه های خود پرسان بکنیم وقتی که علمه های از پیش ما سوال میکنن شما سوال دارین مشکل فقی دارین باید ما سوال بکنیم من وقتی که در طیره باشم چه قسم نماز بخونم؟ در کشتی باشم چه قسم نماز بخونم؟ آیا در طیره نشسته روی به طرف قبله نباشه؟ میشه که من نماز ما بخونم یا نماز ما قضا بکنم؟ آیا میشه در طیره تایم هم کرد؟ ایساولا رو باید ما از علمای خود بکنیم پیش از اینکه به سفر میریم آیا پیش از اینکه ما سفری داشته باشیم باید بفهمیم تا در جریان سفر بر ما مش بسیاری که هستن نمازهای خدا ترک میکنن در میدان هوایی، در بین تیاره ولی یک اشتباه هست دین ما دین بسیار آسان است خداوند نمیخواه سرکس حرج سختی رو بیره، مشکله بیره گفته استاده نماز میتونین بخانین، نمیتونین نشسته نماز بخانین نمیتونین به پال و نماز بخانین، دراز کشیده اشکال مختلف است که انسان آب نمیتونه تایموم بگیرین آب یاف نمیشه کنین یعنی انسان و بسیاری کساس احکام نماز نمیفهمه. مثلا وقتی یک نفر رو ببینید در دا این دام رسیده و دا اونجا ده روز نیت میکرد که من ده روز اونجا هستم چی میکنی من نماز؟ اینجا نیت اقامت کردم حتی اقل باید ما بفهمیم که اقل اقامت از دیدگاه شریعت اسلامی 15 روز است چهارده روز هم که یک نیت اقامت بکنی بس تو بس باید نماز مسافرانه بخونی و یا یک مثلا سفرش پوره شد الان پس به طرف خانه خود عرکت میکنه آیا ما وقتی که از هند عرکت میکنم به طرف کابل میم فیلن نماز باید در هند بخونم نماز خدا؟ مسافرانه بخوانم یا مقیم بخوانم باید من از علمهای خود بکنیم تا اینکه در اونجا برای ما مشکل ایجاد نشه خب این مسئله است که انسان باید در سفر یک جوان مسلمان یک مرد مسلمان یک خانم مسلمان باید در بکنه من مسلمان استم دیگه خب غیر مسلمان ها در تیاره کارای زیادی میکنن خوراکای زیادی میخورن در میدان های هوایی از چیزای خراب استفاده میکنم من منعید یک مسلمان باید چی کنم عین کار از اونا را بکنم و یا ادیقل ما در جریان سفر باید منحیست یک دعوتگر عملی قرار بگیرم دعوت با زبان تنها کفایت نمیکنن و کسان که تنها به زبان خود دعوت میکنن ناکام هستن پس ما میخوایم دعوت بکنم باید عمل ما دعوتگر باشه. ما باید در تیاره در میدان هوایی در نشست با غیر مسلمان ها اخلاق و آداب اسلامی را مراهات بکنم تا دیگران من را دیده و بفهمن که یک مسلمان است و ای عمل کرده من در شخصیت دیگران موثر واقعی خواد شد خب ما وقتی به این رسیدیم مشکل اساسی در این است که چیزهای مثبت هم دارم چیزای منفی هم دارم. اول از مثبت شروع میکنیم چیزای مثبت در این ما چی دیدیم چی مثبت است بسیاری کسا فکر میکنند که والا اگر پیشه زیاد شد سوی در و تعلیمی بلند میرن در حالی که بر ما ثابت شد که بسیاری کشورهای فقیر هستند که فقیر هستند ولی سوی تعلیم و تربیشون تعلم بسیار بلند بودن تانستن که برنامه لیسانس داشته باشن تانستن برنامه ماستری داشته باشن تانستن برنامه دکتورا داشته باشند. و حتی تعجیبی بود که کسی که برای آدم و خدمت میکرد من پرسانش کردم تو چقدر سخوادیم؟ گفت من ماستر هستم یعنی تانستن که وضعیت تعلیم و تربیت خود با پول کم و اندک ما متاسفانه مردم افغانستان خود ما تیشه بر تعلیم و تربیه خود می زنیم. یک طفل شش مادر در یک مسجد میره شش ما با در افتیسی یاد نداره ای ظلم هست ای گناه هست ولو که گناه رو من بکنم طفل خود طفل تفل سنف مکتب شده و معلمش که ادعای ایمان میکنه. و طفل بچاره سنف شده انوز یک خط عادیر خواندن نمیتانه پس غضب خدا سر ما نازل میشه که هر روز بسیاره گناهی خود جنایتی که در مقابل یک طفل میکنیم پس غذب خداوند سر ما نازل میشه چرا یک طفل سنف چار مکتب ما میتونه یک خط بخانه با امکانات بسیار کم انسان میتونه که وضعیت تعلیم تاربی خدا خوب بسازه چیزی مثبت دیگه ای که ما دیدم یکی از دوست های ما آ موجه که ما زندگی میکردیم داخل پانتون بود انستیتیوت اندرگاندی بود در بین انستیتیوت اونجا معسلین هم بودن جوان ها بودن دخترا و پسر چیزی که مرا را بسیار به تعجب انداخت که در بین همه هاستل جایی که اونا زندگی میکردن ما شما لیلیه میگیم در اونجا یا اتاق کلان جور کرده بودن و در اونجا یک تلویزیون مانده بود و تقریبا در سی چار ست چینل بود و فلم ها ایندی و همه چیز بود ولی هر وقت که ما ساعت هشت اشتونیم بجهن رو بجهن از غذا که خلاص میشنیم میامدیم به طرف اتاق خود می میکردم که یک نفر جوانم اوجه نششتن برای دیدن تلویزیون این جوانات دل ندارن ما خود های ما مخ خود که تلویزیون باشن حتی نماز خودا قضا میکنیم یا چرا از یک ما حسنشان پرسان کردن کسی از دوستای ما از یکش سوال کرد گفت تولسی کو جانتیه خو؟ آب تولسی کو؟ اوبارشگو گفت گف که نهی نهی. تولسی کانه؟ گفت تو تولسی را مشخص کن. گفت تولسی کیس؟ پی ماسله هندی چنان فرماسله شیطان دن پسوند شد. اوبو گفت این پش میگه تولسی؟ این منامش نشون میدم تولسی خب یک کس برای از گفت که برادر منظور از این اونمو یک سریال است که بهو بی کبی ساس بی کبی بهوتی و چطوتی بیرون ناماش میگفتن بلاخره آه گفت ما سریال درست است این گفت اعلانش از طریق تلویزیون شنیده اعلانش از طریق تلویزیون شنیده پرسان کردیم که آیا شما سریال نمی گفت پروفیسور من هستم منم که اه... سریال ببینم گونا معمولاً استان ما وقت ندارم که سریال سریال کنم. و اگر ما وقت ما در سریال سریال کردند، سپری بکر ما درسای ما درس‌های مفتوح و این سریال‌های ماکسرش تجارتی است و خاطر تجارت از کمیسیون ما ما ما این اعلان‌هایی پای که می‌شه کلش موضوعش موضوع تجارت است و اعلان تجارتی است پای سبده آوردن است ما وقت نداریم. و آمریکا سرکشمون بگیم ما وقته را اون آرمانده شد دایلانات شدیم. دیده اما ما خودم ای رو نمی کنم و ایگه به ما یک وقت مرد در دی افغانستان کورس نطاقی می خواندم یکی از یک یکتا نفر اونرمنده این دی در افغانستان یک تیرات جوانای ما دو وقت یک کال کالش کمپیر شدن ای از این جوان ها سای پشت پشت از این دونه می دویدن و می دویدن و سر کار گرفته بدن با صرف آمده بدن برای دیده برای یک سطح یک فلم وقتی پرسان کردن خود دیدون کلی گیسی می دویدن در مو رادیو افغانستان در بین استدیوی های شک کلان بود که بعضی معافل در اونجا گرفته می شد در مونستدیوی کلان این دونه فر آمدن و یک کسی که به اصاب از هنرمندهای ما بود و با آمدن از این بسیار افتخار میکد و بسیار خلاکتکتر میگیره خیست از پیش از سوال کرد که مسترمیتاب شما هنرمندای افغانستان رو میشناسین؟ من شما را آنقدر میشناسم که از پدر و از مادر و از خواهر و برادر خودم میکرد زیادتر و هیچ فیلم شما نیست که من نایده باشم و با بسیار همونتو مثل کت یکوشتو گب بزنی و اش گفت که وله هیچ وقت ندارم که فلم افغانی رو ببینم دیگه هنرمنده هیچ از چی بشناسم من هیچ وقت ندارم یکی زور داد دیگه پسان باز رفت برازی و در گوشش میگه خیلی که خودت فلم هایت که خوب شد. تا پیشتر خفتخار مگن نی آخوزر بزرشن مردم ماوشی ما بازداجور زورش میاد حالا که از اون تقابل میخواد بگیره رف ورش گفت گفت که خیلی فیلم تو آم کشندن فیلم است و از بیش مزلا خدا خیز میپرتی او باز می بر ما خدا نشان میتی که ما فیلم پر کردیم. گفرا در گفای ای من است که توی فیلم جور کردی گفای ما این فیلم وایو با مردم ما با منته قبائل با دانش جور میکنیم دادان سینماای پامیر و سینماای تیمرشایی و غیره چرتانگه کرد قرضدار و آقای پدر مادر و زیر دارگریختگی او اسپندی و اسپندود کدام کس رو دیدی که با شخصیت باشه معصر پوانتون باشه استاد پوانتون باشه عالم باشه دانشمند باشه آجی باشه ادیقل شاگرد اول نمره مکتب باشه برده اونجا گفت شما اگه فلم رسالت در سینمای پامیر نصب شود گفت چار نفر نمیرس حیل نمیکنه که پیغمبر تانست ما مجبور هستم برای لودا لودا بازار برای لوچک لچک لو بازار ما خب هر کس مطابق اندیشهش برش فلم روان میکنم ما بر تو فلم گاندیجی رو را رای کنم میکنی؟ فلم مادرین دیار رو سهل میکنی؟ نمیکنی سهل پس ما مجبور از مطابق اندیشه تو اونمو چیز مرداری رو که خوش داری مثلا تو تجارت بکنم پس کار ما تجارت است برای ما خب در جایی که ما بودیم در پالویزی یک جای از صورت به نام فیلم سیتی میگن شهر فیلم. یک روز از متر ما را غلط کردیم قسم به خداست که ما تو نیت هم نداشتیم که با دوره ببینیم و بر ما تو هم نداشت. خب اما موتر ما داخل فیلم سیتی شد و قسمت ما مادیدیم که یکی از استریال ها رو ثبت پرسان کردیم گفتیم که شما پرسان کردیم گفتم که گفتیم اونو فلانی که عمو دریوار گفتین چه اون فلانی پلانی سریال که برنامه فلانی سیج نشه اونم خود کسایی که فیلم ساخت میکنن دیگه دیگر مردم کلگی در سرک می رفتم گفتم آمد گفتیم چه کس سالکردار از همه هر کس کارش ما دریوار هستم دریواری خودم میکنم او محصول از درس خودم میکنم او انجینیر از انجینیری خودم میکنه. او تجار از تجارت خودم میکنم او یک گنرمند است کارای نری خودم میکنه. آلومه در وزیفه از او چی مداخله بکنم خب اگر بچه فلم از اینجا تیر شوه با بچه فلم هیچ وقتی که کامپیوترم کار میکنم یک تعمیر چل منزله را دیزاین میکنم. یه چویخ بچه فلم کامپیوتر تو چی هست نه؟ گفت نه گفتم نه؟ گفت این بینیمی قسم ما هم نمیرم در کار از اون مداخله کنم او کارش ما میخواستم بخاطر اعتباد با فامیل خود سیم کارت بخریم یک ساعت مکمل ما پیاده رفتیم دوکانه رو پرسان کردن بریم سیم کارت کار داریم دابین هزار دوکان بلخره م یک دکوره که خرده که هم کاسی بود هم فلم بود و هم سیمکار داشت. اوی نفر سیمکار کارت یک میزه که خرد داشت. هیچ چی که پس گفت که برادرې قسمی هم سیم کارت توزیع نمیشه برین پاسپورت تو نه برین ما گفتیم پاسپورت از گفتن پاسپورت اینجا کار نیس برین دقامته داره بره و ازمون همو پا پانتونه که شما اومدین خط برین که بر ما برتون سیم کارت بدید. یک هزار نفر اگر یک نفر داشتش موبایل می بود. ما خاصی میرن پرسان بکنیم تا که مرضهای خود بر ملت خود بیان بکنیم ما چقدر ملت مریض هستیم چقدر مریض هستیم و چه قدر خود ما به خود خیانت میکنیم بر فامیل خود خیانت میکنیم بر اولاد خود خیانت میکنیم بر اولاد خود یا کتاب که پیجار به با قیمتش باشه کمر ما میشکنه که برای برادر خود یا برای برای خوراک خود یا برای برای اولاد خود بخریم چیخ میزنم که کتاب مکتب نداد که سعی مغریب هستم که بیچاره هستم که کتاب از کجا بخرم که کتابچه از کجا بخرم یعنی کل کتاب و کتابچه و قلم یک شاگرد رسن اول چند میشه که بری بخری دانی 50 په 20 رو 30 رو کتابکای مکتب است دانی 5 رو په قلم و کاغذ است اینا نه میخریم ولی وقتی که اینا نفره نفر که اینا تو چیغ زدن میره وقتی که در موبایل گپ میزنه 15 تا گپ میزنه و ده هر دقیقه 10 قری ماصف 650 بکنید این مرض است بر ما یک نوع تابعیت و استعمار است یک نوع خود از ضربه زدن است اقتصاد خود از ضربه زدن است خب در بین هزار نفر یک نفر دستش موبایل است شما شما موبایل ندارین ما اصلا همه چرا موبایل نداریم؟ میگه برادر من موبایل چی کنم؟ من پدرم همه قدر پیسه داره که بر من میده که فیس پوانتون ما شدم مکالون ما دو هزار پیره مهانه در موبایل خود مصرف بکنم بازمخه اقتصاد فامیلیم تمام میشه پدرم ده هزار ماش داره هفت هزار ماش داره شش هزار ماش داره چهار هزار ماش داره او که پنج رو بر من فیس میتر دو که کتاب و کتابچه کرای را میکنم حالا اگه باز من 500 سد رو پیشه در موبایل بزنم باز اقتصاد فامیلی ما خراب میشه مقصد چه برادر هسته آیا مردم افغانستان هم. امی بیهودگی ها و هم از در موبایل تبا نکرده افتخار نگشته من باید موبایل قاتکی داشته باشم. باشم من باید موبایلم نسبت به خوبش باشه من باید موبایلم از 300 فلم برداری بکنم من باید در بین موبایلم ریش صفیه به خدا به چشم خود دیدیم من از بیگاردان هرگز ننالم که هرچی چه تو رسه با من هرچی کرد آشنا کرد که بر من هرچی کرد آن آشنا کرد ما بر اولادای خود نشینه جوانا ششته؟ دیروز جای سلم گفتم ریش برازیم براستی تک تک تک تک چی است دوش که گوش کنه ببینه در موبایل از برای خدا تو خدا غضب خدا گرفتار هستی تو خدا موبایل تک چیز رو عقل که اگه برای کس نشان می و از گپ تو گپ گف یاد بگیر. ما از تو که تو کلان هستی تو وقتی که میگی که استفادهای شما که که شما میشه چی میگوف کسی از شهامت خدا میکردن مبارزه با ها را میکردن از تقوا گپ پس ما از تو تقاضا دارم از تو چلو چلو 5 و 50 ساله که برای ما از شهامت و از ایمان و از عقیده و از نماز خواندارت گپ بزن باز اگر اینو گپ زدن نمیتونی ادعا قل اطفال ما رو گمراه نکون ما کل ما هم, زدن هم کل از چی باش که یک این بخشای مصبتش بود چرا مردم اندوستان پرستان نشان کردیم؟ چرا شما اونرمندعی تان 8 دوز داریم؟ چرا شما اونرمندعی تان 9 دوز داریم؟ گفت ما دلیل داریم چی دلیل است که شما آن تان 11 دوز داریم؟ گفتن یک دلیلش خواهیی است گفت ما بسیر دلیل اونرمندعی خدا رو دوز داریم بیرای اونرمندعی افغانستان؟ بشنون و بفاهمن که چرا مردم از شما متنفر هستن گفت ما و سه علت اینا رو گفت اینا سه کار اساسی میکنن و کل ما ای رو دوست داریم اول گفت یک هنرمند ما تانسته که از طریق سریال و فلم دین ما رو به کل دنیا معرفی بکنه اما دین باطل ما رو پرستیره رو به کل خانه ها انتقال دانه این اگر یک مسلمان یک بچه مسلمان رو پرسان که تو بچه امن نکای اسلامی چی قسم میشه؟ نمیفامه اما از ده سال ساله پرسان بکن بکنم این گوه چی قسم میکنه می این تو آتش رو در می این تو گت گت آتش میگردن اصلایست؟ گوه بالاخره اونرمنده دایما ما کار علمه دین ما رو میکنن از این خاطر علمه دین ما اونرمنده ها زیاد خوش دارم. چون کار از رو میکنه دیگه از دقای دین گفت فرهنگ ما را در تمام دنیا گفت اینا نشر کرده مردم افغانستان سر پیرانتنبان پیرانتنبان که پیرانتنبان و سر لونگی و سر ریش میشه هرمه که بو بوشه داروسی میشه منم می هرمشه داګور سي مې كاتېره پیران نه افتم، پېر ته مون نه افتم، یګ ات... گفت نفر آروسی میگه، توی یو استاد اسای کوسالو پونتو آمست، است، د یو اوروسي کټې پرې نن به نه امه ده، کټلنګې امه کالای اوندو اینه مې بچارک سل کړی، سابق د افغانستان و یګان ټا که دې چی مې که دمی د یو اوروسي او مردایی که مردای زن بودن، پیران شګ رنگه تنبانش دیګرنګ. ما چند تا را دیدم در فروشگاه من میگم البته یه از ما قسم مردم از پسا هم گفتنی این سر مردم از خالق رواج شدن سر لباس فرهنگی خود می شرمیم و سر لباس اون دوها افتخار میکنیم گفت ما خاطر اون دوها برای هنرمندای خود زیاد علاقه دارن خاطر چی علاقه دارن؟ خاطر از که فرهنگ ما را فرهنگ ما را ها؟ و کل دنیا معرفی کردن از خاطر ما تمام کسانه که پرهنگ خود خوش دارن ایمان خود خوش دارن این اونرمند خوش دارن سومی کاری که گف کردن گف نصف تجارت کشور ما از اینمی اونرمند ها تمویل میشه به میلونهای انسان غریب میلونهای انسان غریب گف اینا پیسدار ساختن بادام و خسته و پسته و جلغوزی لوکس افغانستان که مردم افغانستان سوئد تغذیه از خورده می گفت ما یک میلیون خسته و بادام و پسته و از افغانستان می در مقابل 2 میلیون دیگه یا بر ما برشان فیلم صادر میکنن برخیص پسرک یک شاعر است از گلخانه چاردی میگه برخیس پسرک تو حمت کن همچون دیگران تجارت کن طلا برو گودیگه کاور یا اسپاک و مارو خرک آور برخیز پسرک تو حمت کن همچون دیگران تجارتی کن تلا ببرو گدیگک آور آل باید ببر بادام ببرو خسته ببرو پسته و فلمک آور <تصفح> یا اسپک و ما رو خرک آورد. از این خاطر گفت که چون یا در اقتصاد ما اقدر موثر هستن ازی خاطر مردم ما اینا رو به ایسی داری دوست داریم آلو موتوبه هنرمند خود چی پیام داره؟ چی پیام داره هنرمند ما؟ اول از نگاه دین آیا ما هنرمند داریم که بخواهی که دین خدا برای دگر را معرفی بکنم؟ یا خودت مسلمان شو یا مرا مسیحی کن چی مانا؟ علما ما اینجا هستن ار رضا بالکفری کفر کسی که راضی شود که یک مسلمان کافر شود و یا راضی شود که من اگر وقت شود کافر شوم پس اینمی رضایت به کفر کفر است و این در خاندان خود چی رو تر تقدیم میکنه بر مردم کفر تدبیق میکنه کفر پیشنهاد میکنه در خاندان خود بچه جوان شوقی دو چشمانت خماری چرس و بنگت بزن هنرمند ماخ مردم مخطرات تشویق میکنن هنرمند ماخ مردم بلو چکی تشریح میکنن اینه میسته نیستم میگم اصل نیست پس اناله او که اندوستانی رو پرسان کنی میگه من اونرمند دین معرفی میکنم هنرمند ما عقیده ما رو معرفی می‌کنه، هنرمند ما فرهنگ ما رو به مردم معرفی می‌کنه، هنرمند ما برای ما نفع اقتصادی داره. از ما چی از این خاطر وقتی که هنرمند به این شکل قرار بگیره، مردم از ازش متنفر میشن. اگر به اون شکل باشه، واقعاً کسی که فیلم رسالت ساخته بود، چرف سریالای اسلامی رو ساخته بود، وقتی که در اردن فوت کرد، میلیون نفر در جنازه‌اش شرکت کردن. چرا خوبه مردم ساختن؟ ما سریال سجی مولدین افغان رو در دوبای دیدیم سجی مولدین افغان با باید سریال مسلمان ها می ساختیم افغان ها می ساختیم. مربوط به ما بود یک چند وقت پیش انستیتیوت تب بنامه انستیتیوت تب ابو علی ابن سینای بلخی بود امور هم حذف حصل کردن هم نامش حذف کردن و امروز در پانتون های فرانسه و انگلستان نامی ابوالعلی ابن سینای بلخی تصویرشون ایس یک دانشمند نصب است برای ما چی رسیدن برای ما بغیر از که بخیزیم حتی یک موویز از شارقه شارجه ما شما میگید در شارخه کانفرانس بود درباره سرجمالالدین افغانی از کل دنیا ماینده خواسته بدن از علمایشان از افغانستان کسره نخواسته بدن چون مردم افغانستان با ها و با علمای خود ارزش قائل نیستند تمام روز بسیار که واسشان بررسن سر عالم خود روشخند بذرن سر خود مسخرگی گی بکنن سر دانشمندان خود مسخرگی بکنن یک شیشان شیشان گلاس پر است یک گلاس شیر برش بده دنی آخر یک کمک این شیر اه... چیست؟ هست؟ آخر یک کمک این شیر اه... یعنی گلاس خالی هست اون با به قسمت خالی رو می بینند علما فلاسفه تا شدن ادعای غیب رو نمی کنند علما هم اشتباه میکنه ما کل ما اشتباه میکنیم از شما که ما زیاتر گناهکار هستیم از شما که زیات ما از خداوند میترسیم از شما که ما زیات به دربار خداوند رجوع میکنیم ولی منتظر ازری میاس که زمیتونه تم یک کلمه gap پیدا شد اورمور زک پرداس بده و پرداس بده و مجلس برو بگو و مجلس برو بگو ولی سای فلان نیو تکد والا فلان نیو کالای فلانی کوتاس است فلانی دراز اونا از اسالما و شخصیت ها اه اه اه شخصیت ها را در تمام دنیا احترام میکنند و بر برنامه از اونها مجلسا و محفلهای را میگیرند حتی به برنامه سید جمال الدین افغان ولی متاسفانه در افغانستان این کارا کس نمیکنند مشکل دیگه که معاصرین افغانی ما به هند میرن از افغانستان 500 نفر میره به این این معاصله بیچاره افغانی ما و شما افغانستان ما و شما رحمت های خدا زیاد است شما رحمت های خدا نظر خود غذب ساختیم آب هوای بسیار خوب داریم صرف های بسیار خوب داریم مسجد های لوکس لوکس داریم جای درسخانی بسیار خوب داریم باغ های خوب داریم اونجا که سایه این معاصله ما وقتی که رفته چی کردی وراسه سات نفر معسل دفانتور احمدان افغانی 80 تاش پس گریخت چرا میخواستم که به خیال افتاده یک سریال دیده دیگه فکر میکنه که اونجا دیگه مثل سریال وارستو و موترالکس است و در موتر برو خوردن اونجا که میره میرسه که از اکثر سعی میکنه که بوی است که دود است که خاک است که کلش سعی کنه این حالت خرابه سرقای سر میکنه پس بوگره که نمیریزی میگروزه ما مرتب همیشه به خیال زندگی میکنیم. اینجا از باتون میمان از مکتب میمان در میمانه یک سالش میسوزه بالاخره پس سرگردان می خزمه چرا کسایی که به خیال زندگی میگیره باید مقیقت اول درک بکنه اون چی که پس مخیف مسلمانهایی که ما در اندوستان هم را ملاقات کردیم دو قسم مسلمان ها رو دیدیم. یکتیداد مسلمان ها رو دیدیم؟ در مجلس شان رفتیم در در یک مسجد، در شار بمبئی. رفتیم خدا قرار من نگیره که یک مسجد بسیار کلان بود یعنی کلانتر از مسجد پلخشتی کرده یک تاکه از مسلمان ها به بود. و اونا میگن به از اینکه مردم ترا ناست که مسلمان هستی حتما کلامی داشته باشه و اون آدم مسلمان ها را از کللاگت که و ریشش میشناس. که مسلمان است؟ با اون دوره میبینی که اون دو چند رقم هستن. یکی سه کسی یکی ریش کلاس یک ریجرره اما مسلمان ها بهشک. مسلماناییشن، درابا بر ما قصه کرد گفت ما خواستیم در اینمی جایی که بت گناه هست چلو نیست ما زندگی اسلامی داشته باشیم گفت فعالین میگوین شار هم میبینید که فیلم گاو را شیرش مسلمان ها کار میکردن پس اون گفت ما زندگی خود سرش کار کردیم پیشرفته تر ساختیم خود ساختیم قال گفت ما تقریبا چند بلاکه گرفتیم و این بلاکه را احاطه کردیم کلش مربوط به و در, در این امی بلاک ها که ما زندگی میکنیم و در دروازه بلاک داخل میشی زندگی به سیستم صحابی کرام است دختره ما درس میرن به طریق سلامی هجاب مرا میشن وسایل لحو لحب نیست استفاده مثبت از همه چیز. و خودش پرسان میکنیم چی کار که ما سه یفته در دوبه هستم و یک هفته میکنیم پس به وطن خود یعنی قد دانشمند است کدا دبی وضی فجر فس، گفت ماده ابوظبی، شارقه وضی فیم است. واسه سه هفته اونجا استم، یک هفته دیگه تیکت پرواز خانه خود میم، فامیل خودم میبینم، باز یک هفته بعد پس میریم. اخلاقش چریش چریکه ماساکن، فکر کنم یک مولوی است. ولی وقتی که امرایش میشیش چی؟ نفر دیگه شما، ما فکر کنم شما با کلام زبان میتوین گپ بزنین، اردو، انگلیسی، عربی. با هر زبانی که شما خواسته باشین ما میخویم که با شما با شما صحبت میکنیم. اون کسی که امروی ما بودو گفت ما انگلیسی خوبتر میپاییم نفر آمد فکر میکنیم مولویز وقتی که گفت میزنن گفت ما خودم در شرکت انرژی اتمی هند کار میکنم که ما چخصم از انرژی اتمی برق بگیریم تولید برق از انرژی اتمی. و ما در کمپیوتر ای برنامه ها رو دارم ای رو دارم او رو دارم خب ای اولما وقتی که گفت میزدن ایران میموندی ما خود تیکادار دین ساخته مجرد که یک نفر یک خوال کنه یک گپ که بزنه مرا تشریح میکرد یک کسی بسیار همه تو یک سوال گستاخانه کرد گفت که صاحب همه یک گپ هستم مسلمان ها کس بسیار خوار غریب هستن نان خشک میخورن و تمام روزی کافر ها را سای کیک میخورن کلچه میخورن صاحب زندگی لوکس دارن او برش گفت که بای صاحب. در خانه یک دانه یک توتی داری و در خانه موش هم هست برای توتی نان خشک میتی برای موش کیک میتی خب از توتی خوشت میه موش بدت میه گفتم می کافر هم کس بهش خدا هم بسنی موش ها کیک میتشان خب بدشان میه ما مسلمان نان خوش خشک میتن خوش با داره. <تصفيق> یعنی سوال سوال با بسیار خوبی و لطافت زیبایی اوبت مشکل جهان در چیست؟ به نظر شما پروفسور اومدن که ما تا یک شرابی تشریح میکنه یک انگلیسی تشریح میکنه وقتی که خبر شدن که مثلا بر از گفتن که استاد شرایط است او دیدم که علما ایشون دویده دید اومدن امرو ما 36 پیشتر خبر شدن که استاد پانتونست است استاد پانتون خدا روان کردن حالا که خبر شدن که استاد از شریات است علما ایشون اومدن امج مشکل اساسی دنیا در چی هست امروز از مسلمان ها گفت امروز مشکل اساسی مسلمان ها دای است که رابطه مسلمان با خدای عزوجل قطع است و مسلمان از سنت پیغمبر فاصله دارد دو مثال بر ما گفت ما دو مثال میتونم کوچک از زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت در جنگ بدر تعداد مسلمان ها بسیار کم بود بهات کم تا سلام نهی تا مهمات نهی تا یه نهی تا و نهی تا گفت اگر یک نفر ارکان حرب جنرال سبا میخواستی به نشان میده میفت که نی اینجا 313 سی نفر است یا چند نفر است و اون طرف دیگر تعداد زیاد است این خود ارکان حرب جنرال برد میگفت که مسلمان های جاتمن جا از نگاه استراتیجی و از نگاه قوانین اسکری باید شکست بخورد ولی اینا پیروز شدن اما در جنگ احد که مسلمان ها هم ج ام صلاحشان یک داره خوب شده بود اما هماتشان خوب شده بود ولی مسلمانان در چه مشکل گرفتار شدن گفت مسلمان ها به خاطر از اینکه یک گپ پیغمبره ام بی جوانه فرمات که در اونجا بودن یک گب پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را هم, هم نشکستاند لغزیدند صحابه کرام بودن یا پیغمبر نمیخواستن بشکن لکن گفتن که پیغمبر خود ما گفته بود در حالت جنگ است, و است حال خیلی جنگ خلاص شد و کاف، کافرها شکست خوردن بین و شما پیغمبر گفته که اگر ما ولی پیغمبر برشان گفته بود که اگر کامیاب شدیم یا ناکام شدیم یا هر قسم شد شما در جایتان باشید اینا یک لغزششان سبب چی شد که حتی دندان پیغمبر هم به شهادت رسید یک سنت پیغمبر ترک شد لشکر مسلمانان بسیار خساره دیدن امروز ببینن که یک مسلمان میتونه که در یک روز هزار سنت تطبیق بکنه اگر یک نفر هایی که از صبح میخیزه تا واده از این خواب تایی ای خواب دیگه اگر می سنت ها رو تطبیق بکنه به هزار سنت میرسه ولی ما متاسفانه متاسفانه به هزار ها سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترک میکنیم بنا ان مدد خدا از کجا بر ما به چون ارتباط ما با خدا قطع است و چون ارتباط ما با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز به روز قطع شده میره ار وقتی که ارتباط ما با خدا پیش شد و هر وقتی که ما تانسم سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شکل درست اونجا منتظر مدد و کمک خداوند باشیم و ان شاء الله برشان برشان خلاصی و فرج باز بشه با ما یک تعداد مسلمانای دیگه هم دیدیم که متاسفانه در بین بمبایی در بین بحر یک بحر است در بین بحر یک زیارت است یک کسی از بنامه آجیالی امی زیارت ازی در بین بحر است و از سرک پخته تا اونجا یک را جور کردن بسیار که در این باین را میریم باکر هفته ایم از این طرف هم آمد از این طرف آمد این قسمت های تا از ابو بحر جفله میزنن و انسان تر میشن دیدیم اون دو هم میرن مسلمان هم میره گبر هم میره نسار هم میره کل لگی به این طرف است. صاحب دو هست و تبله هست و صاحب کستا هست و سیدیا هست و عجی چیز بحر فلانی خب یارا گفتن گفتن گفتن گفتن کجا جا ما که رفتم کتم همی کسی که ما را ترجمانی میکنه و میبره و چیز اون دو هست مرگف یک دستمال در سر میکنم. میکنم. میکنم. میکنم. بسته همی که مشکل نیست دستمال بسته کردن خودش یک دستمال که سفیده گرفت در شخص شا... گلی خود بسته کرد وقتی کنجا داخل رفتن اونجا سهل کردیم که مثلا مردم هستن گرد گرد نموز زنا ها هستن به اون تو شرط نیست که تو اون دو هست یا مسلمان هستی مقصد میرن همونجا دسمال های زری زری سرک که دسمال هاوار میکنم یکی گل میبردم یکشون میبردم خب ما رفتیم چون پیسه نداشم ببخش نگه گل مولی نخریدیم <تصحیح> دیگه دسمال زری بگپام نگردیم خب بقصد ما رفتیم و اونجا گفتیم ی کی صاحب کلی خدا سر قبر موندے ی کی صاحب کلی خدا زیر قبر موندے ی کی قبرے بغل کرده و ی کی ایک ٹک ٹو شجیز کردا ان دور میں پرسون کہے تو چی نہیں کہ جای مسلمان ہے گفت کہ کیا فرق ہے دور مسلمان کی کیا ہے ہاں کیا ہے ہم भगवान کے پاس سر تکتے ہیں اور اپ آج علی کی ما کلی خدا برای رام پخش میکنیم و تو با باجلی میکنی پس پیش تو عجیلی بی؟ قهرمان هست پیش من؟ بگوان افتخارتون دار چیز دیگه؟ واقعا اونجا ماک ضربه خوردون متاسفانه بیبی سر ما چی کردن؟ انتقاط گفت بین تو بین ما این فرق نیه عجیلی خوب آدم میتن؟ ادام بیا چه آدم میتن؟ دا؟ اونه دام دا. ما میری پیش از این سجره تو میری پیش از این میکنی آه، اگر تو کدام برطریت داری خیبر ما نشان بده که بام مشکل دیگه که در اندوستان است نظام سرمایداری یا کپیتالیستی است یک نفر دیدیم که تعمیر چل منزله داره شخصی و هر آپارتمانش سی و پین لک، چل پین لک، و کلدار قیمت داره فکر که این نفر چقدر پیسدار است و نفر دیگه رو دیدیم که خانم و شواب قرار داروی لب سرک یک چندانک خسک مانده اونو اونجا چای جوش میکنه اتونه ایست که مثلا اگر لب سرک افغانستان باشه خوب است. اینجا قوایق هست یکان زرد سردی است یکان درخت است اونجا صاحب گرمی با بسیار حالت خرابت فلکش ببینیم اونجا با حالت بسیار خراب است نک از خیرات خور پیسه میده و نک از چیز خراب. و اقتصاد بازاری که امروز در افغانستان میگن که ای تبا کرده ملتی از اونا را هم غریبا به نهایت غریب و فقیر استن و همون جاگه نشان دادن اما اصلا که برای ما درس میدان گفه شما سعی کنین سرمایدار نشان داد که پارسال 80 کیلو وزنش بود امسال 180 کیلو شدن و غریب به چاره پار 50 کیلو بود امسال 40 کیلو شدن غریب غریب شده میره و پیسدار پیسدار تر شده میرن و اقتصاد بازار آزاد چی مانا؟ اقتصاد بازار آزادی مانایی شیست از که دولت کنترل نداره سر بازار مثل کالفیدن در افغانستان ایره رواج کردن دولت سر بازار کنترل نداره وقتی که دولت کنترل نداشت هر کس که آمد هر کس که آمد آیی با اقتصاد بازار آزاد بره موبایل و شرکت های موبایل خوب است نه یکیش قیمت بود ارزان شده و حالا یک سیمکارت مفتام میشن اما آر چطور میشن؟ روغن چطور میشن؟ این کلش ضررهای نظام اقتصادی است که اونا گفتن که این بدبختیره ما چشیده ایم اتیاد کرین مردم افغانستان اگر نه توبا مشکل دیگه که در مسائل اقتصادی جهانی و مطرح شد گفت آل فعلا یک ضربه که به اقتصاد جهان میزنن گفت کشورهای غربی برنامه دارن که از مواد قضایی مواد سخت میسازن از مواد قضایی مواد سخت یعنی گندم و برنج و گپاره ماشین ها به مواد سخت مبدل میگنن چون مواد سخت قیمت شدن میرن گفتی ضربه بسیار بزرگ میزنن به اقتصاد مردم جهان این بود خاطرات ما دباره این خلاصی گپش بود اگر کس داشته باشه خوب بغیر زب مولای سیب صحبت باشرم